دوره به الله که بخشاگنده و با رحمت است لام را اینها آیات کتاب بیان کننده حقایق است ما قرآنی فسیح و گویا نازل کرده ایم امید که تعقل کنید ما به واسطه ی قرآنی که بر تو وحی می‌کنیم، بهترین داستانها را برای حکایت می‌نماییم. داستان‌هایی داستانهایی که پیش از این از آنها بیخبر بوده ای یادار هنگام اینکه که یوسف به پدرش گفت پدرم در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم که مرا سجده می کنم. پدر گفت پسر کوچکم، رویای خود را به برادرانت مگو که براید نقشه خواهند کشید و بدان که شیطان برای انسان دشمنی آشکار است. اینچنین پروردگارت را برگزیده است و به تو تعبیر خواب آموزش میدهد و نعمتش را همچنان که بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرد بر تو و خاندان و یعقوب نیز به تمامی عرضه خواهد داشت. زیرا پروردگارت آگاه و حکیم است در داستان یوسف و برادرانش برای کسانی که خواستار آگاهی از آنند عبرت است. یادار آن هنگام که برادران گفتند یوسف و برادرش بنیامین نزد پدرمان از ما محبوبترند در حالی که ما نیرومند قطعا پدر در اشتباهی آشکار است یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی دور دست بفرستید تا پدرتان فقط به شما توجه کند. بعد از آن توبه کنید و قومی صالح باشید. کسی از میان آنها گفت یوسف را نکشید. اگر میخوایید کاری کنید او را در عمق چاهی بیاندازید. شاید از این رهگذر کاروانی رد شود و او را با خود ببرند. گفتند پدرجان چرا در مورد یوسف به ما اعتماد نمی‌کنی؟ در حالی که ما خیر خواه او هستیم فردا او را با ما رهسپار کن تا غذای خوب بخورد و بازی کند مطمئن باش ما مراقب او خواهیم بود پدر گفت هرگاه یوسف از من دور می شود غمگین و نگران می شود می ترسم زمانی که شما از او غافل شوید گرگ او را بخورد گفتند گرگ او را با بودن افراد نیرومندی مثل ما بخورد اگر چون این شود همه ما مسئول و زیانکاری هنگامی که او را با خود بردند و تصمیم گرفتند که او را در عمق چاه بیاندازند، به او واهی کردیم از دستاورد این کارشان با خبرشان خواهی کرد حالان که الان نمی فهمند. شب هنگام پیش پدرشان باز آمدند. گفتند ای پدر ما به مسابقه اسب سواری مشغول بودیم و یوسف را تنها کنار وسایل من گذاشتیم و گرگ او را خورد هرچند میدانیم با وجود این راست میگوییم تو حرف ما را باور نمی‌کنی و جامعش را که به خونی دروغی ناقشته بود آوردند پدر گفت نفستان کاری وحشتناک را در نظرتان جلوه داده است اکنون فقط صبری که در اوج زیبایی است راه من است در مورد آنچه که گفتید فقط باید از خداوند بزرگ یاری خواست کاروانی آمد و سقای خود را فرستادند تا آب از چاپ بیاورد. هنگامی که دلو را به چاهنداخت گفت مژده که این یک پسر بچه است آنگاه او را چون کالایی مخفی کردند حالانکه خداوند از عمل آگاه بود و او را به قیمتی ارزان که چند درهم بیش نبود فروختند زیرا مورد توجهشان نبود کسی از اهالی مصر او را خرید و به همترش گفت تا در اینجاست محترمش بدار شاید برای من سودمند باشد و یا او را به فرزندی برگزینیم. به اینچنین یوسف را روی زمین مقام دادیم و به او تعبیر خواب آموختیم زیرا خداوند بزرگ بر کارش مسلق است هرچند اکثر مردم نمی دانند. و هنگامی که جوانی رشید شد علم و حکمت به او عطا کردیم بدانید که این چنین پاداش نیکو کاران را می دهیم و آن زنین که یوسف در خانه اش بود از او تمنای کامجوی کرد درها را بست و گفت بشه یوسف گفت پناه می برم به خداوند اگر به عزیز مز خیانت کنم زیرا او مرا پرورش داده و مقام مرا گرامی داشته است خداوند ستمکاران تجاوزکار را رستگار نمی کند. اما زن قصد او کرد و اگر یوسف برهان پروردگارش را نمیدید، او نیز قصد زن می کرد. و ما اینچنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم زیرا یوسف از بندگان مخلص ماست هر دو به طرف در دویدند و زن پیراهن یوسف را از پشت سر پاره کرد در این هنگام شوهر زن را کنار در دیدند زن گفت آیا جزای کسی که قصد بد به ناموستو دارد جز زندان و عذاب دردناک است؟ یوسف گفت او مرا به اصرار به جوی فراخاند و شاهدی از خانواده زن ابراز داشت اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد زن راست میگوید و یوسف از دروغ گویان است و اگر پیراهنش از پشت سر پاره شده باشد زن دروغ میگوید و یوسف از راستگویان است و هنگام که شوهر دید پیراهن یوسف از پشت پاره شده است گفت این از حیله شما زنان است و حیله شما زنان بسیار خطرناک است یوسف از این مطلب سرط نظر کن و تو ای زن از گناهت آمرزش بخواه زیرا تو از خطاکاران بوده ای زنان شهر گفتند که همسر عزیز مصر قصد کامجوی از غلام خود را کرده است و عشق و اشتیاق به او تا اعماق قلبش نفوذ کرده است ما این زن را در گمراهی آشکاری میبینیم همسر عزیز مصر هنگامی که از فکر و نظر زنان آگاه شد کسی را به سراغ آنان فرستاد تا بیایند و برای راحت نشستن آنها پشتی فراهم کرد و به دست هر کدام چاویی داد آنگاه به یوسف گفت خارج شد هنگامی که چشم زنان به او افتاد مبهوت او شدند و دستان خود را از حواس پرتی بریدند و گفتند پناه بر خدا این بشر نیست این فقط فرشته بزرگ بزرگوار است همسر عزیز مصر گفت این همان است که عشق برا نسبت به او سرزنش می کردید. من درخواست کامجویی از او کردم اما او خود را نگه داشت در حالی که اگر دستوری بدهم و او انجام ندهد زندانی خواهد شد و بیتردید خار و ذلیل است یوسف گفت پروردگارا زندان رفتن برای من بسیار دوست داشتنی از چیزی است که مرا بدان میخواند و اگر هیله این زنان را از من دور نکنی قلبم به سوی آنها مایل می شود که در این صورت چون نادانان دور از حقیقت خواهند بود پس پروردگارش دعای او را اجابت کرد و هیله زنان را از او دور ساخت زیرا او شنوا و داناز اما چون نشان های پاکی و ایمان یوسف را دیدند، تصمیم گرفتند تا مدتی او را زندانی کنند دو جوان دیگر نیز با او در زندان بودند یکی از آنها گفت من در خواب دیدم که شراب می گیرم و دیگری گفت من در خواب دیدم روی سرم تکنانی دارم که پرندگان از آن می‌خورند. ای یوسف ما تو را نیکوکار میدانیم پس از تعبیر خوابمان آگاهمان کن گفت پیش از آن که جیره غذای شما را بیاورند از تعبیر خوابتان آگاهتان خواهم کرد همچنان که خداوند مرا آگاه کرده است بدانید من آیین قومی که خدا و روز قیامت را باور ندارند ترک کردم زیرا آنها به حقایق کافرند من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی می کنم سزاوار ما نیست چیزی را شریک و همتای خداوند بزرگ قرار دهیم و چون این امتیازی برای ما و همه مردم یک فضل الهی است هرچند اکثر مردم بعد ناشناسند ای دوستان زندانی من خدایان متعدد بهتر است یا خداوند واحدی که بر همه چیز مسلط است بدانید که شما چیزی را نمیپرستید مگر نام هایی که خود و پدرانتان نامگذاری گذاری کردید خدایانی که زاده توهمتان است آن هم بدون این که دلیل و جتی الهی داشته باشد حکم جز حکم خدا نیست و او دستور داده است تا چیزی غیر از او نپرستید این دین پابرجاست هرچند که اکثر مردم بدان آگاه نیستند ای دویار زندانی من یکی از شما ساقی شراب اربابش خواهد شد دوباره آزاد می شود و دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از مغز سر او خواهند خورد آنچه از من سوال کرده بودید جوابش چنین مقدر شده است و یوسف با آن کسی که می دانست آزاد خواهد شد گفت مرا نزد اربابت یاد کن ولی شیطان باعث شد تا یادآوری کردن به اربابش را فراموش کند لذا یوسف چند سال دیگر در زندان ماند پادشاه گفت من در خواب دیدم که هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را می خورند و نیز هفت خوشه سبز دیدم و هفت خوشه خوش. ای علمای درباری من اگر از حقیقت تعبیر خواب مطلعید، خواب مرا تعبیر کنید گفتند اینها جزب خواب خوابهای آشفته است و ما از تعبیر این گونه خوابها آگاه نیستیم اما یکی از آن دو زندانی که آزاد شده بود بعد از مکسی گفت من شما را از تعبیر آن آگاه می کنم مرا به سوی آن مرد زندانی یوسف بفرستید یوسف ای مرد راست این خواب را برای ما تعبیر کن. هفت گاو لاغر، هفت گاو فربه را می خورند. و نیز دیدن هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک. تا من به سوی مردم بازگردم امید آن که از این تعبیر آگاه شوند. یوسف گفت هفت سال با تلاش بسیار زراعت کنید و هرچه درو می کنید جز اندکی که می همه را با خوشه انبار کنید. زیرا پس از آن، هفت سال وقتی در راه است و در آن هفت سال آنچه را ذخیره کرده اید برای مصرف به مردم بدهید مگر لسمتی را که به عنوان بعض نگه میدارید. سپس بعد از آن سالی خواهد آمد که بر مردم باران فراوان ببارد و آنها آب و ثه میوه‌ها و دانه ها را میگیرند. پادشاه گفت او را نزد من آورید هنگامی که پیک به سراغش آمد یوسف به او گفت به سوی اربابت برگرد و از او بپرس حقیقت داستان آن زنان که دست خود را بریدند چه بود هرچند پروردگارم نسبت به هیله آنها آگاه است پادشاه زنان را احضار کرد و گفت حقیقت ماجرای آن روز که یوسف را به سوی خود خاندید چه بود گفتند پناه بر خدا ما هیچ عیبی در او نیافتیم و همسر عزیز مصر گفت الان حقیقت آشکار شد این من بودم که او را برای جویی به خود فراخواندم و یوسف از راستگویان است و اینچنین اعتراف کردم تا یوسف به فهمد من در قیابش به او خیانت نکردم او را گناهکار نخوندم بدانید که خداوند نقشه خائنین را موفق نمی کند. و ما او ان النفس الا ما رت بالصوم ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم من نفس خود را تبرئه نمیکونم زیرا نفس اماره هماره انسان را به بدی و زشتی وسوسه میکنه مگر آنکه پروردگارم رحم کنند زیرا پروردگارم آموزنده و باگذشت است و پادشاه گفت یوسف را نزد من آورید تا او را هم نشین خاص خود کنم و انگامی که با او سخن گفت و عقل و درایتش را دید گفت از امروز تو صاحب مقام و امین ما خواهی بود یوسف گفت مرا بر گنجین های این سرزمین بگمار زیرا من نگهبان آگاهی هستم و اینچنین یوسف را در زمین صاحب مقام کردیم تا هر جا که خواهد مستقل شود بدانید ما رحمت خود را به هر کس صلاح بدانیم عطا می کنیم و پاداش نیکوکاران را زایع نمی کنیم حالان که پاداش آخرت برای آنان که به حقایق ایمان دارند و حرمت خدا را نگاه میدارند بهتر است برادران یوسف آمدند و به حضورش رسیدند در حالی که یوسف آنها را شناخت ولی آنها یوسف را نشناختند و که یوسف زاد و توشه آنها را مهیا کرد گفت بار دیگر با برادر کوچک پدریتان نزد من آیید ببینید چگونه پیمانه هایتان را از قله پر می کنم و بهترین میزبانانم و اگر او را نزد من نیاورید، دیگر هیچ سهمی از قله نزد من نخواهید داشت و از دوستان نزدیک من نخواهید بود. گفتند ما با پدرش صحبت خواهیم کرد تا او را راضی کنیم. مطمئن باش این کار را خواهیم کرد. آنگاه به مردان خود گفت اجناسی را که بابت خرید قلد دادند در بارشان بگذارید تا هنگامی که به خانوادهشان می میرسند آن را ببینند و کرامت ما یادشان بیاید و برگردند. هنگامی که به سوگ پدرشان بازگشتند گفتند پدر ما از اینکه که سهمی از قله داشته باشیم من شده ایم مگر آنکه برادرمان را با ما راهی کنیم مطمئن باش ما مراقب او خواهیم بود گفت آیا به شما اطمینان کنم آن گونه که نسبت به برادرتان یوسف به شما اطمینان کردم برحال خداوند بهترین محافظین و ارهم الراهمین است نگاهمی که کاله هایشان را باز کردند دیدند اجناسی که در مقابل قلعه داده بودند به آنها بازگردانده شده است گفتند پدر دیگر چه خواهیم؟ این سرمایه ماست که به ما پس دادند پس برادرمان را با ما بترست ما برای خانواده مواد غذایی میآوریم و از برادرمان نیز محافظت می‌کنیم و از قله سهم بیشتر خواهیم آورد و این کار آسان است پدر گفت هرگز او را با شما نمیفرستم. مگر آنکه با من یک عهد محکم الهی ببندید مبنی بر اینکه او را نزد من باز خواهید آورد مگر آنکه همه گرفتار شوید چون با او عهد بستند گفت خداوند بر آنچه میگوییم است آنگاه گفت ای فرزندان من از یک دروازه وارد نشوید بلکه از دروازه های مختلف وارد گردید بدانید نمی توانم حادثه ای را که خدا برای شما اراده کرده از شما دفت کنم حکم فقط حکم خداست بر او توکل می کنم بلکه همه توکل کنندگان باید بر او توکل کنند و هنگامی که از همان طریقی که پدرشان گفته بود وارد شدند با این وجود واقعی که خداوند بر آنها تقدیر کرده بود دور نشد و فقط حاجتی که یعقوب در دل داشت از این را به اجابت رسید زیرا او صاحب علمی بود که ما به او آموخته بودیم هرچند که اکثر مردم از آن بی هنگامی که به حضور یوسف رسیدند او برادرش را کنار خود جای داد و گفت من برادر تو هستم و از عمل اینان غمگین ما شود. پس هنگامی که بارهایشان را بست جام پادشاه را در بار برادرش گذاشت سپس کسی فریاد زد ای کاروانیان شما دزدید آنها جلو آمدند و گفتند مگر چه چیز را گم کرده اید گفتند جام پادشاه را گم کرده ایم هر کس آن را بیاورد یک بار شطور قله خواهد گرفت و من زامن این پاداش خواهم بود گفتند به خدا قسم شما خوب می دانید که ما برای فساد و تباهی به این سرزمین نیامده ایم و دوز نیستیم گفتند اگر دروغ گفته باشید جزای شما چیست گفتند در بار هر کس پیدا شود خودش مستحق جزای این کار خواهد بود ما ستم تمکاران را کیفر میدهیم یوسف قبل از بار برادرش بارهای آنها را گشت آنگاه جام را از بار برادرش بیرون آورد و این نقشه را ما به یوسف یاد دادیم زیرا او هرگز نمی توانست طبق مقررات و قوانین پادشاه برادرش را نگاه دارد مگر آنکه خدا بخواهد بدانید که ما درجات هر کس را بخواهیم بالا میبریم و همباره بر فراز هر دانایی داناتری هست گفتند اگر او بنیامین دزدی کرده برادرش یوسف نیز قبلا دزدی کرده است یوسف جواب این سخن را در دل پنهان داشت و ابراز نکرد گفت شما وضعتان بدتر است و خداوند بزرگ از آن که توصیف میکنید آگاهتر است گفتند ای عزیز مصر او پدر پیر و سال خورده ای دارد یکی از ما را به جای او نگهدار زیرا تو را انسان نیکوکاری می بینی. گفت پناه بر خدا از اینکه که کس دیگری را جز آن کس که جام را در بارش یافتیم بگیریم که در این صورت از سه باشید هنگامی که از او معیوز شدند، به گوشه ای رفتند تا چاره ای برادر بزرگترشان گفت، مگر یادتان رفته که پدرتان از شما تعهد الهی محکمی گرفته است، حالان که قبلا هم در مورد یوسف بیانصافی کرده اید. من هرگز از این سرزمین بیرون نمی مگر پدرم اجازه دهد یا خداوند در باره من داوری کند، زیرا خداوند بهترین چاره اندیشان است، به سوی پدرتان برگردید و بگوید ای پدر فرزند تو دزدی کرد اما ما جز به آنچه میدانستیم شهادت ندادیم زیرا از غیب آگاهی نداریم از اهل شهری که در آن بودیم و کاروانی که همراهش بودیم بپرس خواهی دانست که ما راست می گوییم پدر گفت نفس شما ماجرا را چنین در نظرتان جلوه داده است صبری به زیبایی بایدم شاید خداوند همه گی آنها را به من برساند زیرا او آگاه و حکیم است و از آنها روی برگرداند و گفت وا، واعصفا بر یوسف و چشمانش از اندوه سفید شد در حالی که خشن خود را فرو میخورد گفتند به خدا قسم تا آنقدر از یوسف یاد میکنی تا به مرز مرگ رسی و یا هلاک گردی گفت من فقط قموصه خود را به خداوند بزرگ میگویند و از خدا چیزها میدانند که شما از آن بیخبرید ای فرزندان من بروید و یوسف و برادرش را جستجو کنید و از رحمت الهی ناامید نشید، زیرا فقط کافران از رحمت الهی معیوس میشوند. يا أيها العزيز مسنا واهلا الضر وجهنم ببضاعة مزجات لنا الكيل وتصدق علينا پس هنگامی که به حضور یوسف رسیدند گفتند ای متر ما و خاندان ما به مزیره وفت و سرمایه اندکی برای خرید آورده ای. ما را پرپیمانه بده و بر ما صدقه کن زیرا خداوند پاداش صدقه دهندگان را میدهد. گفت آیا فهمیدید که از روی نادانی با یوسف و برادرش چه کردید؟ گفتند آیا تو واقعا یوسفی؟ گفت من یوسفم و این هم برادر من است خداوند به ما نعمت عطا کرد زیرا هرکس کس حرمت خدا را نگاه دارند و صبر و استقامت پیشه کند یقینا خداوند بزرگ پاداش نیکوکاران را زاگه نمی کند گفتند به خدا قسم که خداوند تو را نسبت به ما برتری داده است و اقرار می کنیم که خطاکاریم گفت امروز سرزنشی بر شما نیست خداوند شما را می زیرا او ارهم الراهمین است این پیراهن مرا با خود ببرید و بر صورت پدرم بیاندازید تا بینا شود. آنگاه با همه اهل خانواده نزد من بیایید. هنگامی که کاروان جدا شد، پدرشان در آن سو گفت: اگر نگویی دیوانه شدهاند بوگ یوسف را احساس می‌کنند. گفتند به خدا قسم تو هنوز در اشتباه گذشته سیر می‌کنی. اما هنگامی که بشارت دهنده او را ملاقات کرد، آن پیراهن را بر صورت او انداخت. و نور چشمانش برگشت و گفت آیا به شما نگفته بودم من چیزها از خدا می‌دانم که شما از آن آگاهی ندارید؟ گفتند ای پدر به خاطر گناهان من برای من آمرزش بخوام، زیرا ما خطاکاریم. گفت به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش خواهم خواست زیرا او بسیار آمرزنده و باگذشت است چون به حضور یوسف رسیدند پدر و مادرش را در آغوش کشید و گفت همگی داخل مصر شوید که الله در امنیت خواهید بود. پدر و مادرش را بر تخت نشاند و همگی برای او به سجده افتادند و یوسف گفت ای پدر این تعبیر خوابی بود که دیدم. خداوند آن را محقق ساخت و به من نیکی روا داشت هنگامی که مرا از زندان خارج کرد و شما را از آن بیابان نزد من آورد بعد از آنکه که شیطان بین من و برادرانم فسادن انداخته بود حقیقتا پروردگارم نسبت به هرچی اراده کند صاحب لطف است زیرا او آگاه و حکیم است پروردگار تو نصیبی از فرمان روایی به من عطا کردی و تو مرا تعبیر خواب آموختی تو آفریننده آسمان ها و زمینی تو در دنیا و آخرت دوست و تکیگاهی مرا در حال تسلیم به میران و به سالهان ملحق کن ای پیامبر اینها از اخبار غیب و نادیده است که بر تو وحی میکنی حالان که وقتی آنها گرده هم آمده بودند و چار اندیشی میکردند تو نزدانها نبودی اکثر مردم ایمان نمی آورند هرچند تو به ایمان آوردنشان حریص باشید تو از آنها موز نمیخواهی زیرا قرآن یک یادآوری برای همه جهانیان است و چه بسیار آیات و نشانهایی که در آسمانها و زمین وجود دارد در حالی که آنها از آن می گذرند و توجهی نمی کنند اکثر آنها به خدا ایمان نمیآورند آورند زیرا مشرکند آیا می پندارند اگر به صورت قافلگیرانه عذاب همگیر الهی به سراغ آنها بیاید یا ساعت رستاخیز برسد در امان خواهند بود بگو این راه من است و از این راه با بسیلت کامل مردم را به سوی خدا میخواند. راه من به راه هر کسی که از من تبعیت کند و پاک و منزه است خدا و من از مشرکی نیستم ما قبل از تو کسی را به رسالت نفرست مگر مردانی از مردم شهرها که به آنها وحی می کردیم آیا بی در زمین سیر و سیاحت نکردند تا به عاقبت کسانی که قبل از آنها بودند پی ببرند؟ بدانید که زندگی جاوید برای کسانی که حرمت الهی را نگاه می دارند بهتر است چرا تعقل نمی کنید؟ و چون پیامبران از ایمان آوردن مخالفان معیوس شدند و فهمیدند حتی ادهی که به ظاهر ایمان آورده بودند دانها دروغ گفتند یاری ما به سراغشان آمد زیرا هر را صلاح بدانیم نجات می دهیم و مجازات و عذاب ما نسبت به جماعت گناهکار نشدنی است. حقیقتاً در ماجراها و داستان آنها برای خردمندان عبرت است اینها داستان دروغی نبود بلکه و مطابق کتب آسمانی پیشینیان است و شرح هر چیزی در آن آمده و برای اهل ایمان سراسر هدایت و رحمت است لقد کان فی قصصهم عبره لأولی مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ صدق الله العلي العظيم